صفحه دویست منم که این کار برای آنا خیلی ناگوار و گران است ولیکن نوشتن چنین نامی او و اولادش را خوشبخت خواهد ساخت من درباره خود چیزی اگر اگرچه من به قدری رنج بردم که هیچ مردی آنقدر رنج نبرده است من تنها به چیزی که اهمیت می دهم آنا و اولادم می باشد به همین مناسبت دست تضرع به سوی شما دراز کرده پس شما میخواهم آنا را قانع کنید که این نامه را بنویسد داریا مبهوتانه پاسخ داد بسیار خوب من او را قانه خواهم کرد فصل 3 همین که داریا میخواست بخوابد در گردیده و آنا داخل شد آنا در آن روز چند بار به داریا گفته بود ای دوست وفادار اگر فراموش نکرده باشی گفته بودم هر وقت فرصت کردم تو را از همه چیز با خبر خواهم ساخت اکنون آن فرصت به دست آمده ولی نمیدانم چه بگویم آنا نازدی که پنجره نشست و به داریا نگاه کرد. نگاه آهی کشیده پرسید. راستی حال کاترین چطور است؟ حتما از من خشمناک است. داریا توسم کنم گفت. او به تو خشمناک باشد؟ نه. آنها گفت. پس او از من بیزار است؟ داریا گفت. خیر عزیزم. ولی در احال انسان به آسانی این چیزها را نخواهد بخشید. آنا از پنجره بیرون را نگاه کرد و گفت. ولی با وجود این گناهی ندارم من درسته نمیدانم چه کسی باید مورد به سرزنش قرار گیرد در هر حال بگو ببینم که کاترین خوشبخت است یا نه میگوید شوهرش مرد شرافتمند و آدم خوبی است داریا گفت من در عمر خود مردی به خوبی او ندیدم آنها گفت من از دانستن این خبر خیلی خوشبختم داریا گفت اکنون در خود صحبت کن من چیزهایی دارم که باید به تو بگویم من با کونت فرونسکی صحبت کردم آنها گفت فرونسکی با تو صحبت کرد؟ راستی بگو ببینم عقیقه تو درباره این نوع زندگانی که من میکنم چیست؟ ببینم من چگونه در میان کشتزارهای بیسر و صدا و زیبا و جنگلهای سبز و با صفاب و ساده و با وفا زندگی میکنم الحق زندگانی است و من عبدال حاضر نیستم زندگانی غیر از این داشته باشم ولی نمیدانید من چقدر معزبان و نگران می شوم وقتی که او برای بعضی از کارهایش از من دور می شود و مرا تنها میگذارد. این امر خیلی اتفاق میافتد. کارهای زیاد او چنین ایجاب می کند که نصف اوقات خود را دور از من بگذراند من نمیتوانم او را مجبور کنم که در خانه بماند. مثلا اگر اسب او را برای مسابقه ع ببرند او هم برای تماشای آنها می رود. او خودش محصولات زراعتی خویش را میفروشد. او خیلی از من دور می شود ولی آیا من می توانم مانع او بشوم تنهایی مرا می کوشد و با وجود این باید صبر کنم و دم نزنم خیلی خوب است فعلا این موضوع را کنار بگذاریم بگو ببینم فلورسکی به تو چی گفت داریا گفت او به من گفت خوب است موقعیت شما را بهتر کنیم. و به نظر من بهتر است که شما با هم ازدواج کنید آنا گفت مقصودت این است که درخواست طلاق از شوهرم بنمایم آیا می دانی که ششصد خانم بیتسی تنها زنی بود که در پترزبورگ به دیدن من آمد؟ تو به تبو را میشناسی. او زنی بسیار بله‌هوس و ایاشیست و هم ای هم جز شوهر خود انتخاب کرده است. ولی با وجود این به من گفت که چون من در این وضع ناپسند باقی بمانم، ارتباط خود را با من قرض خواهد نمود. آیا گستاخی تا به این درجه دیده ای؟ ولی اکنون بیاییم سر مطلب خودمان. فرونسکی به تو چه گفت؟ داریا گفت او گفت به خاطر تو و به خاطر خودش رنج میکشد او میخواهد دخترش را همه دختر او بداند و شوهر تو بشود یعنی بین شما رابطه شرعی برقرار کردند آنها گفت فلی کدام همسری بلکه کدام کنیزی مانند من نسبت به او با وفا خواهد بود یا مانند من در عشق و محبتش این گونه فداکاری خواهد نمود داریا گفت ولی او مقصودی ندارد جز اینکه این عذاب و رنج درونی تو را از بین ببرد آنا گفت این غیر ممکن است داریا گفت آری همچنین او نمیخواهد اولادتان گمنام و بدون اسم و باشد آنا گفت چگونه و از چه گفت با طلاق میگوید که شوهرت موافقت به طلاق نموده است آنا گفت من حاضر نیستم در این موضوع صحبت بنمایم بسیار خب این موضوع را کنار می‌گذاریم، ولی چون این به نظر می رسد که تو به زندگی به نظر ناامید نگاه می‌کنی، تو نمی درک درد کنید که در چه حالی هستی. راستی وضع ناگوار و غیرقابل تحملی دارم من سعی می کنم خود را نادیده گرفته و تا می توانم آن را فراموش کنم. داریا گفت ولی در هر حال شما باید درباره یه خود بیشتر بیندشید و علاج آن را پیدا کنید. آنها گفت، علاج میگویی ایلدهما اسپسروس کیز ازدواج کنم آیا آیا گمان میکنی در این باره فکر رو اندیشه نکردم لحظه ساکت مانده سپس گفت آیا در این باره فکر نکردم من شب و روز به او فکر می نمایم ولی چه میتوانم توانم بکنم درخواست طلاق به نمایم به خوبی میداند که شوهرم موافقت نمی کند کارنین امروز اختیارش در دست کنتس لیدیا میباشد داریا دریا گفت با وجود این چرا در این اقدام نمی کنی آنا گفت بر فرض این که من پشت پا به عزت نفس خود زده و آمیزی آمیزی برای کانی بنویسم از دو حال خارج نیست یا او پاسخ زننده و احانت آمیزی خواهد داد و یا اینکه با من موافقت خواهد نمود به فرض که موافقت نمود آیا طلاق همه چیز برایم خواهد بود آن وقت پسرم چه چهمیشود او را به من نخواهند داد تو میدانی که من در دنیا دو کس را از جان خود بیشتر دوست میدارم یکی فرزندم و دیگری محبوبم فراسکی میباشد ولی بدبختانی نمی توانم آن را یک جا جمع کنم و حضور فروسکی هم دوری فرزندم را نمی تواند جبران کند چون نمی توانم به این آرسو برسم لذا به هیچ چیزی اهمیت نمی دهم مرا تخیر مکن من مستحق تحقیر نیستم من زن بیچاره و سیاه روزی هستم آنگاه به سوی در رفت در حالی که با صدای لرزان و آهسته گریه و ناله می کرد فصل چهار یک هفته پس از رفتن داریا از نزد آنا، سروفسکی به آنا کارنینا گفت که خیال دارد برای شرکت در انتخابات عمومی ولایات مسافرت کند. این کلام را با لحنی گفت که آنا فهمید وی مصمم به رفتن می باشد و نمی تواند او را مانع از رفتن بشود. از این رو آنا تصمیم گرفت صبر و شکیبایی را پیشه خود سازد. وقتی سروفسکی رفت آندا درباره ی لحن خوشنطامیزی فیروزکی که با آن مسافرت خود را اعلام نموده بود افتاد ولی خود را دلداری داد و گفت مگر او حق ندارد هر کاری را که میخواهد بکند و هر وقت میخواهد مسافرت نماید ولی آن لحن خشک و خشن آیا آن دلیل بر کم شدن عشق و محبتش نمی نمیباشد آندا برای اینکه از این افکار و نگرانیهای خیش رهایی یابد خود را به کارهای خانه و مزرعه و بیمارستان مشغول نمود همین که شب رسد با مورفین اعصاب خود را تقدیر میکرد و از بیخوابی و خیالات گوناگون خود را آسوده مینمود ولی با تمام این احوال هجوم خیالات او را آسوده نمیگذاشت و دربارهٔ رابطهٔ خود با فرانسکی بیمناک بود پس از اندیشه زیاد دانست که بهترین وسیله برای اینکه معشوق خود را در کنار خیش نگاه دارد و نگذارد او را ترک گوید این است که از شوهر خود طلاق بخواهد و با فرونسکی ازدواج كند الا چنین تصمیمی گرفت و منتظر اولین فرصت شد تا موضوع را با فرونسکی در میان گذارد. پنج روز گذشت و فرونسکی نیامد. روز ششم تصمیم گرفت به دنبال فرونسکی برود. ولی منصرف شد و به نوشتن نامه ای نموده و در نامه خودچوانین ما نمود کرد که دخترشان سخت مریض شده مشرف به مرگ است. و از خواست که چه زودتر مراجعت کند. همین که نامه را فرستاد پشیمان شد زیرا ترس آن را داشت، فیروسکی از دروغ او خشمناک شود. ولی چون علاقه‌مند به بازگشت او بود، به یک چنین دروغی اهمیت نداده و به طبیعت واگذار نمود. و غروب روز هفتم، فیروسکی مراجعه کرد. آنها با خوشحالی به استقبال او شتاف ولی متعیر بود که چه عذری برای دروغ خود بیاورد. فیروسکی هم که چشمش به آنها افتاد پرسید: حال دختر چطور است؟ آنها گفت: بهتر است. فیروسکی دست آنّا را فشار داد و گفت: حال خودت چطور است؟ آنها گفت مانند پیش خوب است. مزار را با هم صرف کردند. فرونسکی از انتخابات برای آنها تعریف های کرد و کمی نگارامیش برطرف کردید. آنها از فرونسکی پرسید راستی این را بگو وقتی نامم را خانید چه خیل کردید؟ مرد گفت دانستم که حال طفل خوب است. آنها گفت آیا خشمناک شدی؟ فرونسکی گفت نه ولی از این عصبانی شدم که تو نمیخواهی بدانی که من چه وظایفی دارم؟ آنها گفت: کدام وظایف؟ رفتن به کاباره ها و کافه ها؟ فرانسی گفت: نه عزیزم وظایفی که نمیتوان آن را انجام نداد. مثلا برای انجام کارهای املاکمان من باید فردا به موسکو بروم آیا می شود در خانه نشست و مسلحتهای خودمان را نادیده گرفت؟ خیر آنا، چرا خود را به این اوهام و نگرانی ها معذب می داری؟ تو می دانی که تا چه اندازه من تو را دوست می دارم؟ گفت خیر خیر اگر تو برای این آمدی که باز فردا بروی و اگر از این زندگانی خسته و ملول شده ای؟ فرنسکی کلام او را قطع کرد و گفت آنا. این قدر سنگ و خیالاتی نباش تو میدانی که من حاضرم هر فداکاری را در حق تو بنمایم آنا گفت اگر تو فردا به موسکو بروی من هم با تو خواهم آمد من نمیتوانم تنها در اینجا بمانم بیا با هم زندگی کنیم یا از هم جدا شوی فرافی گفت آرزوی من این است که عمری در کنار تو باشم ولی تو هم باید زن گفت در خواست طلاق بکنم بسیار خوب، این کار را خواهم کرد و به اون نامه خواهم نوشت ولی ماندن در اینجا بدون تو طاقت قد فرساز من فردو با تو به موسکو خواهم آمد فرانسپی توسم کنان گفت چرا این کلام را با می میگویی؟ من به تو گفتم که خوشی من در این است که همیشه در کنار تو باشم ولی نگاه های سخت و خشن او به خلاف صدای آرام و دلکش ها که از این بود که میخواهد بگوید آه چه بدبختی است آن نای این معنی را دریافته فوری از جای برخاست و نامه تذر و آمیزی به کارنین نوشت و از وی درخواست طلاق نمود. و روز دیگر هر دو به موسکو رفتند. به امور کوچکی مانند سوء تفاهم بین زن و شوهر اهمیت نمیدهد. سوء تفاهم بین آنا و فرونسکی زخم خونی می شده بود که ابداً التیام نمی‌یافت. که بین آنها اختلاف بزرگی رخ نداده بود ولی نگرانی و استراب آنا و اصرار به دانستان حرکات و سکوناتی سرفکی زندگانی آنها را سخت و دشوار نموده بود در چنین لحظه دشواری عامل جدیدی که فرفکی حساب آن را نکرده بود پدید آمد و آن غیرت و حسادت آنا بود چه در حقیقت آنا هر زنی را که شوهرش با او یا درباره او صحبت می‌کرد رقیب خود می‌دانست خیال می که کاخ سعادت آنها واژگون خواهد شد. فروسکی بدون آنکه بداند خود حس غیرت و حسادت را در آنها تقویت می نماید روزی درباره مادرش با آنها صحبت می و او را بهکشش سلیقگی و ویزی متهم ساخته گفت که مادرش کوشا می باشد که او را قانع سازد تا با دختر کونتس سوروکین ازدواج کند. بدین این گونه وقتی اقامت آنها در مسکو طول انجامید، آنا پیش خود فراسکی را متهم ساخت به اینکه عمدن در مسکو میماند تا مادرش و کنت استروکین را ببیند. این اندیشه حس کینه آنا را علیه فرانسکی برانگیخت و پیش خود اندیشید که فرانسکی علت بدبختی و رسوایی و دوری وی از پسرش سیرج می باشد. ولی این چیزها مانع از این نبود که امور را آن گونه که هست و حقیقت دارد بنگرد در آن موقع پیش خود چنین گفت غیرت و حسادت بیجایم کاخ سعادتم را ویران و زندگانیم را مسموم میسازد. و وقتی صلح و صفا بین ما برقرار شد باید به او پیش‌نواد کنم که به مزرعه برگردیم و در آنجا با کمال آرامی و خوشی زندگی نماییم آری غیرت و حسادت من کاملا بیجاست او ابداً از من متنفر و بیزار نیست غیر ممکن است او فراموش کند که من به خاطر او دست از پسر خود برداشتم همین که این فداکاری را در نظر مجسم نمود طاقت قد با صدای بلند به گریستم را گذاشت فرونسکی دعوت شده بود نهار را نزد یکی از دوستان خود سرک کند همین که براجع کرد آنها به استقبال او شتافتی در چشمانش آثار تذروع و تسلیم دیده می‌شد. آننا از سرونسکی پرسید امیدوارم در میهمانی به تو خوش گذشته باشد فرانسگی گفت مچکرم بد نگذشت ولی چه میبینم این چمدان ها چیست آنها گفت چون این به نظرم رسید که ما در مزرعه خوشتر از اینجا باشیم در حقیقت من هم زندگانی در مزرعه را بر زندگی در اینجا ترجیح و برسری میدهم ولی چشمان فرانسگی غیر از این را میگفت آننا پس از کمی سکوت پرسید بگو ببینم آیا در مهمانی به تو خوش گذشت؟ فراستی گفت گفتم که به من خوش گذشت پس از صرف غذا به استخر شنا رفتیم تا در جشنی که به افتخار قهرمان شنا برپا کرده بودند شرکت نماییم این قهرمان شنا یک زن سوئدی بود آنها گفت چطور؟ آیا او با این هوای سرد در برابر لخت لغت شده و شنا کرد؟ فراستی گفت آری؟ جامعه قرمز شنایی که زننده دود برتن داشت در هر حال بگو ببینم چه وقت به مده مراجعت خواهیم کرد؟ آنها گفت هر چه زودتر؟ پس فردا فرستتی گفت پس فردا غیر کرد پس فردا روز یکشنبه است. من پس فردا باید به قولی که به مادرم دادم به نزد او رفته و از او مقداری پول و بعضی اوراق بگیرم آنها نگاه آتشینی از روی شک و تردید بر فرونسکی افکند به طوری که وی از آن نگاه مضطرب گردید. نیرانی فرانسکی شک آننا را تقویت نمود. ذهنش متوجه کنتستورو و دخترش گردید و گفت چرا فردا به نزد مادرت نمی روییم؟ گفت فردا؟ غیر ممکن است. زیرا مادرم باید پول اوراقی را که از او خواستم تهیه کنم. آننا گفت پس ما نخواهیم رفت. فرانسکی گفت برای چی؟ آننا گفت یا باید روز یک برویم یا هرگز نخواهیم رفت فرنسکی از روی ترجع و بیسبری گفت ولی این دیوانگی است آنه گفت دیوانگی؟ تو فقط به خوشی خود اهمیت میدهی و عبدان ایتنایی به درد و آلام دیگران نداری فرنسکی با خشم و غضب جلو رفته و فریاد برورد این غیر قابل تعمل است آخر صبر هم حد و پایانی دارد چه ازرانی داری که زندگانی مرا مصموم و ناگوار سازی؟ آنها در حالی که از نگاه های قذبالود فرونسکی متورده شده بود گفت مخصودت چیست؟ چه میخوایی بگویی؟ فرونسکی گفت تو چرا مبهم صحبت میکنی؟ نگو ببینم چه می‌خواهی. آنها گفت میخواهم بگویم که اگر احساس بیعلاقی نسبت به احتیگر میکنیم از است که از هم جدا شویم. آنگاه آنکانینا سر روزکی را ترک گفته و به اتاق خود رفت و بر روی نینکتی بی حال افتاده در حالی که پیش خود چنین می میگفت بدون شک او از من بیزار است او زن دیگری را دوست میدارد و دیگر ذره محبت در دل او وجود ندارد باید او را ترک گفته و بروم ولی به کجا؟ آنها هرچی فکر کرد ندانست به کجا برود به نزد امهش برود یا به نزد داریا؟ یا بهتر است که از کشور روسیه خارج شود ولی مردم درباره او چه خواهند گفت؟ کارنین چه خواهد گفت؟ آه پروزگارا چرا او به سر را فیرا خورده و کاخ زندگانی زناشویی خود را ویران ساخته و هم خود و شوهر و طفل خیش را رسوانی می است آه خداوندا چرا مرا کنون زنده گذاشته ای؟ ای مرگ کجایی؟ چرا به سراغ من نمیایی؟ تنها مرگ و نیستی میتواند من را از این گرداب ننگ و بدبختی رهایی بخشد آری فقط با مرگ لکه ی ننگ از دامان من و کارنین و حتی سیرج عزیزم شسته خواهد شد حتما سیرج از مرگ من محسوب خواهد شد ولی او زنده خواهد شد آن شب بر آن ناگوار ناگووار و طولانی گذشت آن شب اولین شبی بود که بر اثر وجود اختلاف ما بین او و محبوبش با چشمان اشکالود خوابید. ولی همین که صبح شد آنها پیش خود گفت این اختلاف برای چیست؟ باید برویم و برای من چه فرق می کند که او هر روزی که میخواهد برویم؟ بانگهی این اختلافی نیست که بین ما رخ میدهد. آنگاه آنها به سوی اتاق فرانسکی رفت تا تصمیم خود را بگوید. ولی وقتی از راهرو میگذشت می چون این منظرش رسید که صدای ایستادن درشکه را شنید آنا به سابقه یه حس کنجکاوی سر از دریچه بدر کرده دختر بسیار زیبا و جوانی را دید که به چی دستوری داد و چیزی نگذشت که چی در را نواخت و با درمان صحبت کرد و یکی دو دقیقه بعد فروسکی در حالی که می خارج شد دست دختر جوان را بوسید و چیزی از او گرفت. فروسکی در وقتی که با دختر صحبت میکرد همه تبسم می و پس از آن درشکه دور شد. فروسکی با حرکت دست با دختر خداحافظی کرد و داخل شد. آن کارنینا از دیدن این منظره بناگاه قلبش فرو ریخت ولی شک و تردیدی به او دست داده حس حسادت و غیرتش برانگیخته شده پیش خود گفت پستی و کوچکی من است که لحظه دیگری در اینجا بمانم. آنگاه به اتاق فرونسكی رفت تا تصمیم خود را به او بگوید ولی فرونسكی به او مجال حرف حرفزدن نداده گفت مادرم پولی را که میخواستم با دختر كنتهسوروكین برایم فرستاده و با باید اوراقی را که از پدرم باقی مانده است از او بگیرم آنا به سخنان او گوش داده و نگاهی به سر تا پای وی افیاد و چیزی نگفت ولی فرونسكی اظهار داشت اكنون میتوانیم فردا حرکت کنیم؟ آنا گفت تو میتوانی بروی ولی من نخواهم اومد. فراپی گفت: چه میگویی برای چه؟ آنا بدون آنکه پاسخی به او بدهد از اتاق خارج شد. فرانفی خواست دنبال آنا برود، ولی یک مرتبه از این تصمیم منصرف شده، در جای بماند و زیر لب گفت: من هر گونه رفتاری را با وی آزمایش کردم. بهتر آن است که خدا بیعتنا نشان دهم. آنگاه لباس پوشیده و برای رفتن به نزد مادر خود آماده گردید. آنا منتظر شد که فرونسکی پیش از خارج شدن صحبتی با او بکند، ولی وی چنین نکرد. آنا صدای پای فرونسکی را شنید که خارج می‌شود. بیچاره دیگر طاقت نیاوردی، به سوی پنجره رفت، دید که فرونسکی به درون درشکی جهفت. آنا درشکی را نگاه کرد تا از نظرش ناپدید شد. آنگاه با صدای محسونی گفت: همه چیز به پایان رسید. ترس و وحشت بر بهی مصطولی گردید. زنگ را نواخت و از پیش خدمت پرسید آیا دانستی کند فرونسکی کجا رفت؟ او به چه امر کرد که به ایستگاه راه آهن برود. آنا گفت بسیار خوب نامه برای او با تو میفرستم. فرستم. خواهش میکنم پیش از آن او به ایستگاه برسد نامه را به او برسانی. آنگاه برای فرونسکی این کلمه را نوشت. من مقصرم تو را به خدا مراجعت کن. من از تنهایی می کنم. پیش خدمت خارج شد آن مانند شخص تیر خورده ای به خود می و پیش خود چنین می گفت غیر ممکن است همه چیز به پایان برسد باید او مراجعت کند ولی او چرا بر روی آن دختر زیبا و جوان آن همه تبسم می کرد یک ربعه ساعت گذشت و آننا پیش خود گفت اکنون پیش خدمت به او رسیده و نامه را به داده است آیا او مراجعت خواهد کرد من هرگز نخواهم گذاشت او چشمان مرا سرخ و اشکالود ببیند. او نباید بداند که من گریه کردم. آه چگونه قلب او رضایت داد که به دینگونه مرا ترک گوید و برود. آیا او اشق و فداکاری های مرا فراموش کرده است؟ یک ربع ساعت گذشت و پس از آن صدای چرخ درشکه ای را شنید. فوری به سوی پنجره دوید سر بیرون کرد و گفت آه درشکه اوست خداوندار چقدر خوشحال شدم. ولی فرانسکی در دروشک نبود و همان پیشخدمتی خدمتی که نامه را برای فرانسکی برد در آن نشسته بود پیشخدمت گفت که او نتوانست خود را به فرانسکی برساند و ایشان با ترن به نیجین که مادرشان در آنجا میباشد حرکت کرده است آه پروردگارا چه باید بکند نگرانی و شک و تنهایی او را خواهد کشت آنگاه این چند کلمه را روی کاغذ نوشت زود برگرد باید با تو صحبت کنم کاغذ را به دست پیش خدمت داد و گفت زود این چند کلمه را برای فرنسی به نیشین تلگراف کن. وقتی پیش خدمت رفت پیش خود گفت آتا جواب تلگرافم برسد من از درد انتظار خواهم مرد. پرفتگارا این چه بر است؟ آنگاه بر روی نینکتی افتاده بنایه گریستن را گذاشت. ندیمش او را تسلیت داد و گفت حالا این قدر خود را میازارید. بیرون بروید و گردش کنید. چون این اموری همیشه در هر خانهی رخ می‌دهد. آنا گفت راست می‌گویی. برای گردش بیرون می رو. اگر تلگرافی رسید آن را برای من به خانه خانم داریا ابلوزکی بکنید. آنگاه لباس خود را پوشید با درشگه شوهرش رفت. هوا صاف و شفاف بود. دانه های علماسگون شبنم بر روی برگ‌های های درخت دو طرف راه می درخشید. ولی طبیعت با تمام زیباییش نتوانست درد و رنج آنکارنینای بیچاره را تسکین دهد آننا مبهوتانی پیرامون خود را نگریسته و مانند اشخاص تبداری گفت آه این دختران کوچکی به مدرسه می روند چقدر زیبا هستند دستهای آنها از سرما مانند دست من در وقتی که در پترزبورگ به مدرسه می سرخ شده است. ذکری از پترزبورگ او را یاد کارنین و نامه و تلگرافی که برای او فرستاده بودند داخته و آهسته گفت کی تصور میکرد من این گونه پس و بدبخت بشوم. که در برابر خانه داریا توقف کرد آنها در حالتی که سعی داشت تبسم بکند داخل خانه شد چشمش به آینهی که در راهرو بود افتاد و دید تبسم او بیشتر شبیه به گریه است او گفت خیر آری من مستحق این درد و عذاب هستم آنا از نوکر پرسید: آیا در خانه میهمان هست؟ مستخدم گفت: خیر خانم، در شاهزاده کاترین کس دیگری نیست. آنا فکر کرد و پیش خود گفت: کاترین، چه او را دوست میداشت کسی چه می‌داند؟ شاید سروفی از اینکه مرا دید و یا با خاطر ازدواج نکرده است پشیمان باشد. داریا همین که آنا را دید، با باز از او استقبال نمود و روی پرسید: آیا از اینکه در موسکو ماندگار شدید خوشحال هستید؟ تبسام تلخی بر لبان آنها نقش بسته و گفت گمان می کنم مزودی موسکو هر ترگویید. داریا گفت آیا پاسخ نامه ای را که برای شوهر خود فرستاده بودی دریافت کردی؟ آنها گفت خیر، و من, من از این حیث احساس نامیدی می کنم. داریا گفت نباید محسو محیوس شدی. یا شیفین خیال دارد به پیترزبورد برود و با کارنید صحبت کند تا شاید او را به در امر طلاق موافق نماید آنا لب جویده و چیزی نگفت ولی در دل میگفت چرا کسر نیامد؟ شاید وجود من عزت نفس او را جریه دار میسازد من نباید از او گله داشته باشم و او را سرزنش کنم من میدانم که هر زن نجیبی حاضر نیست با من رو شود آری من همه چیز را فدای اشق نمودم. این است پاداش که ایفر من، هر چقدر چقدر تو بدم میآید؟ آنگاه با صدای بلندی گفت، آیا کاترین از ملاقات من امتناه دارد؟ داریا گفت، خیر، چه خیل میکنی، این است، او آمد، در این لحظه کاترین داخل اتاق شد، همین که جشمش به آن افتاد چهره سرخ گردید، با آهسته گفت، من از دیدن شما خوشبختم، و وقتی که کاترین دست آننا را در دست گرفته و به چهره گیرا و محسونش نگاه میکرد که نمیتواند این زن زیبا و مرموز و بدبخت را دوست نداشته باشد صحبت در بین آن سه زن زندگی یلاق و بهستانی در گرفت و آننا گوش میداد و کمتر حرف میزد سرانجام از جای برخواست که برود دست داریا را در دست گرفته برای کاترین توسه کرد و گفت به امید دیدار خیلی خوش که توانستم با شما خود حاضر بی کنم آنگاه آنها را بوسیده و خارج شد قطرین به خواهر خود داریا گفت زم چقدر زیباست مرور ایام بر دل رو بایی وی است. ولی من این روز علامات درد و اندوهی در چهرهش مشاهده کردم داریا گفت آری او همیشه خوشحال نبود وقتی او میخواست برا به بوسد چون این فهمیدم که نزدیک است گریه کند آنا با یاس و نامیدی بیشتری از خانه داریا خارج شد او وقتی آن دوزن شوهردار خوشبخت را دید حس کرد که او بیانداز بدبخت و پست و بیچاره شده است وقتی آنا برگشت ورقه تلگرافی را به دست ایرادند او با خوشحالی این چند کلمه را خواند تا پیش از ساعت هفت نمیتوانم مراجعت کنم، فرازکی آنا ورقهٔ تلگراف را در دست مچاله کرده و پیش خود گفت تا پیش از ساعت هفت نمیتواند مراجعت کند چگونه تا ساعت هفت منتظر شوم؟ چگونه این ساعتی را که هر دو دقیقه چون سالی بر من می گذرد بگذرانم؟ چون این به نظر او رسید که به نیجین برود و با فرانفتی برگردد این فکر را پسندید در این مسافرت کوتاه لعقل چند ساعتی از سکر خیال راحت خواهد بود و ساعت پنج و را که میخواهد سوار ترم بشود خواهد دید ساعت ها گذشت و آنا در ایستگاه نیجین به مسافرین نگاه میکرد تا شاید فرنسکی را پیدا کند ولی نه او تا ساعت شش نیامد اگر خیال داشت چونم که تلگراف کرده بود ساعت هشت به موسکو برسد لازم بود تا کنون به ایستگاه رسیده باشد بیچاره آنا نمیدانست چه بکند در این موقع دو مرد از کنار او گذشتند یکی به دیگری میگفت همه ی ما بدبخت خلق مرد دومی پاسخ داد ولی خداوند به ما عقل و اراده عطا کرده تا هر نوع بدبختی را که می‌خواهیم انتخاب کنیم و آن نو بدبختی را که نمیخواهیم رد نماییم. آن دو مرد که با هیجان و برافروختگی صحبت میکردند دور شدند. آندا که صحبت آنها را شنیده بود، زیر لب گفت: آری، باید آن نوع بدبختی را که می‌خواهیم قبول کنیم و آن نوع بدبختی را که نمیخواهیم رد نماییم.